Architecture has always defined the human world from the simplest structures to the greatest monuments But a rebellion is underway Led by a new breed of architect that puts people before icons Architects using the tools of their trade to restructure their surroundings redefine their profession. Hello. I'm Muhammad Reza Hayri. I'm a man of a man of a man of a man. 40 years کار معماری و شهرسازی رو در ایران بلاوقفه انجام دادم و همچنین کار نویسندگی رو در این چهل سالم به یه مجموعه یه تجربیاتی دست پیدا کردم که خیلی با این گفتگویی که در این کاری سینمایی انجام میشه و به ویژه تو این مپس ریبل آرکیتکچر یک مشابهت هایی است میتونم این رو برای شما بیان بکنم در درجه اول نکته که برام خیلی مهمه اینی که در این زمان یه ده جوان تشخیص دادن که این بیروبی نشون بدن در یه جایی که مکان عمومی مثل موزه هنرهای معاصر که خودش فی نفسه موزه هنرهای معاصره و به مفهوم معاصر و اصالت خیلی اهمیت میده و در پسش قرار بوده که این اتفاق بیفته یعنی این تنها یک ساختمان نیست موزه هنرهای معاصر یک نهاد یا یک اثرگذاری اجتماعی است راجب اصالت بخشیدن به یه جریانی که در هنر در ایران وجود داره من جمله به معماری مونکه که مهمه ابتدای این بحثم رو اینطوری برای شما آغاز می‌کنم که در این چهل سال من به جستجوی تحقق معماری معاصر ایران بودم هر اصلی معماری خودشو میبایست داشته باشه و اتفاقا چون این فیلمی که نشون داده شد نشون میده که ما از راه های متعارف یا راهایی که گرایش عمده حرفه‌مندان ما هست ما نمیتونیم به تحقق معماری معاصر برسیم الان شرایط اقتصادی و اجتماعی جوری ما رو کوچک کرده کوچک که ما فقط در قالب یک عده مثل مهندسین مشاور میتونیم نمود اجتماعی داشته باشیم و این خیلی کار محدودیست است حالا اینکه حوزه معماری کاملا با این حوزه محدود تفاوت داره چیزی که خیلی مهمه و درم میخواد این مفهوم رو با نسل جوانی که این فیلم رو نشون دادن ارتباط برقرار کنم مفهوم معماری است که من معماری رو بیشتر با جریان اجتماعی همخوانی معماری یک جریان اجتماعی یه دونه تک بنا هم که این نماد معماری یه دوره‌ای باشه. ولی با یه دونه بنا و یه گل بهار نمیشه. بهار اون جریان اجتماعی که همه گل ها همه ساختمان‌ها از معماری برخوردار میشن. معماری یک ارزشی است که در ساختمان بروز پیدا میکنه و این میتونه به تمام جامعه مربوط باشه، میتونه به تکبنا مربوط باشه. مراد من بیشتر معماری جریان اجتماعی و معمارات تو این جریان اجتماعی شرکت دارن. اتفاقا الان چیزی که جای معماری ایران اونو گرفت، ساختمان‌سازیه. یه ساختوسازیه که صورت می‌گیره دریا ساختوساز قطراتی معماری وجود دارند. ما میخوایم این ماجرا رو برعکس کنیم. درش این یه مبارزه عظیمی میتربه. یا همونطوری که این معماران در ریبل آرکیتکتچر یه مسئولیت دیگری رو غیر از اون ساختوساز بودن می‌گیرن، خودش خیلی مهمه. با این مقدمه در این گفتگوی کوتاه من ممکنه یه سری معانی، یه سری مفاهیم رو مطرح کنم، یه شبکه معنایی بسازم که این شبکه معنایی مسیق بعدا کنار هم همقرارگیری اینها به یه شکلهایی که با منطق فکری نسل جوان همخان بشه و برخورد کنه میتونه کل تفکر رو بروز بده و کل اون چیزی رو که مراد من هست بیان کنه ببینید در کشور ما الان در حال حاضر یک تعداد زیادی روستا وجود دارن و یه عالم شهر و تو همه اینا ساخروسا صورت میگیره اگر قرار باشه ما به همین سمت متعارف گرایش حرف مهندسین مشاور حرکت بکنیم به نظر نمی که ما بتونیم پاسخگوی اون نیازهای واقعی باشیم که برای کل این شهر و روستا و ساکنان این شهر و روستا هست پاسخگو باشیم اون چه که مهمه در این فیلم ما متوجه شد که یه ادهی خودشون پروژه تعریف می این یکی از ویژگی‌های معمار بودنه هر معماری که خودش پروژه تعریف کنه به جای اینکه پروژه ها اونو تعریف کنن به طور متعارف گرایش عمدی حرفه‌مندان اینه که می‌نشینن، ساب می‌کنن یا وارد یه جریانی میشن تا یه پروژه رو از دولت یا بخش خصوصی بگیرن اونها بخش خصوصی پروژه رو تعریف باید بکنه دولت باید پروژه رو تعریف کنه که من فکر که یکی از ویژگی‌های معمار بودن اینه که خودش پروژه داشته باشه و این پروژه‌شو تعریف کنه و به استجوی تحقق این پروژه بره پردازه شاید این مفهوم ریبل یا نوعی در حقیقت پرخواستن و نوعی مبارزه کردن نوعی در حقیقت بر علیه یک روند حاکم حرکت کردن از همین جا میاد حالا به ظاهر شورشی ممکن باشه ولی غیر متعارفه متعارف بودن اینه که شما سب کنی یه پروژه رو برید دگری درجه بگیری مشاوری باز بکنی راه حل و سفره بونگاهی را که چراغش رو روشن کنی و تر یا اینکه خودت برخیدید و پروژهی رو تعریف کنی و اونو جلو ببرید در این حالت هست که ما لزومن نباید منتظر باشیم که فقط در شهرها و اونم در مراکز استانها چنین پروژه هایی برای ما هست آه. خیلی از جاهای دوردست کشور ما بی شمار امکان تعریف پروژه وجود داره من فکر می‌کنم که این معماری رو که ما در این سه فیلم ای است که در مجالس جهانی مطرحه. البته همیشه اول اتفاقات رو در مجالس جهانی ما می‌بینیم بعد به کشور خودمون پروژکت می‌کنیم. شاید تو کشور خودمون یه معماری بود به اسم آقای نادر خلیلی که اون یه نمونه خوبی بود و اون کتاب تنها دیدنش به عنوان یک معمار نویسنده نمونه خوبی است که ایشون چگونه سراسر اسمت‌های کویری رو طی می‌کنه و مفاهیمی رو به عنوان که خودش گل تافتن مفهوم سرامیک در معماری ایران و یگانه کردن معماری خاک با نوع مقابم سازیش از طریق سرامیکی کننده دادن اینها پختن این گل این اولین اقدامی بود که شاید یه معماری بر جریان متعارف حرکت میکنه که در ایران خیلی کارش نگرفت ولی ما میبینیم بعدا مثل همیشه کسان دیگری قدر اونو دونستن و ایشون به جوایز متعدد به بین و بهشتای بین و مقرات جهانی رسید البته کسان من دیگه بودن که می اومدن جامعه یا تفکر جامعه و معماری معماری بدون معمار این گفتگوها ساز این جریان بوده در ایران در حال حاضر ما بیشتر همیشه احتیاج داریم چرا به خاطری که تعداد فارغ تحصیلان معماری در کشور ما داره به یک در حقیقت سرعت نجومی افزایش پیدا می‌کنه و برای تمام اینها نظام متعارف کافی نیست ما عضو نظام مهندسی بشیم مشاور باز کنیم می واحل‌های دیگری کشف کرد و این روال‌های دیگه در حوزه معماری. و اینکه خیلی از معمارا این حوزه رو بلگردن نجار و شیرینی‌پز و خیاط و مدیست و خیلی جا در حوزه‌های حکومت، وزارت و وزیر و وکیل و رئیس جمهور و حوزه‌های دیگری رفتند ولی ما در اینجا اگه بخویم در حوزه معماری کار کنیم این حوزه خیلی وسیعه و امکان این هست که یه الٹرناتیو، راه حل دیگری، بدیل دیگری رو پیدا بکنیم برای معمارانی که می‌خواهند کار بکنند و این مودیست اتفاقا همخان هست با نوع شکلگیری نهادهایی که به نام سمن یا مثلا گروه های مردم نهاد اِن ها که اینها داوطلبانه اقدامی رو انجام میدن خیلی از این کارها میتونه داوطلبانه باشه چون که یکی از معماران نسل در حقیقت جوانتر ما کیارش اقتصادی الان این کارو بکنه یعنی فقط مثلا غذا و مکان در برابر طراحی و خود در حقیقت که ما در این چند سال گذشته در قش و مازندران کردیم یعنی کلا ما با وجود که در تهران درس خوندیم بزرگ شدیم خانواده در تهرانه بازار کارمون رو از تهران خارج کرد و نداشتیم بازار ما رو تعریف کنیم ما رفتیم یه بازارهایی رو پیدا کردیم که کمتر این رقابتهای متداول توش هست بازار روستاهایی که در قشم یا در مازندران هست و در اونجا دریایی از دانش معماری بومی ساخت و ساز وجود داره که میتوانیم از اونها بیاموزیم با اونها بیامیزیم و یه طرحی درآمیزیم که این خودش کیفیت پاسخگویی به نیازهای اینا رو داره و این کارو کردن یعنی در بسیاری از تجربه های مازندران به ویژه سوادکوه که این چند روزه شما در برای اینکه ما بگیم الان در تاریخ مرداد 1394 داریم این گفتگو رو می کنیم سیلی که چند روزه پیش اومد نشون داد تو سوادکوه چگونه مثل ساختمونها رو خراب کرد در همین جا مردم معماران بومی نجاران به یک طرحی از معماری به اسم خانههای لاردهای رسیدن که اینها رو میتونن خودشون با گل و چوب زمستون گرم تابستون که مقاومت در برابر زلزله تمام مسائلش قابل بازیافته و با تکنیک خودشون میتونن بسازن و اینو تا سه طبقه تا بالا اونستان بسازن این اون است که در حقیقت اتفاق افتاده یعنی غیر معمارها هم کار معماری کردن ما هم اگر بخوایم در این جریان اجتماعی شرکت کنیم جریانی که ضعیفه دیده نمیشه به این ترتیب این کارو ما میتونیم در حقیقت انجام بدیم و یک نهضت جهانی که مثل همین حالا یا ریبل آرکی یا alternative architecture یک بدیل دیگری برای معماری موثر بیافرینیم. این احتیاج به تداوم داره من فکر میکنم نمایش این فیلم ها و گفتگو جای گفتگو در اون ستا اپیزودی که نشون داد خالی بود. این مجموعه چیزایی بود که من فکر می کنم در این مدت میتونستم برای شما بگم و اگر باز هم در این زمینه فرصتی باشه با کمال این گفتگو رو و مکالمه رو امیدوارم بتونیم ادامه ببتیم با تشکر بسیار. سلام، کوی خزعلی هستم، معمار خیلی خوشحالم که میتونم از راه دور باتون با صحبت کنم بالاخره بعد از سالها شاید بتونم با نسل نو اینطوری در ارتباط باشم نسلی که قرایره آینده مماری رو بسازه خوشبختانه توجه به نسل جدید در مجموع به معماری خیلی زیاد شده به نسبت گذشته ولی هنوز خب طبیعیه که راه حلی که بخواد پیشتاز باشه من ندیدم که بخواد ایرایش توی ایران ولی فکر می کنم اینطوری که پیش بریم دیری یا زود به ارائه راه حلای کیش تازم میرسیم. این مجموعه ربلارکتکس که در واقع شما دارین معرفی می‌کنین خیلی های اهمیته به این دلیل که ما توی دنیایی الان قرار داریم که این دنیا انگار به بست خورده یعنی اگه خیلی به صورت ظاهری بخوایم قضیه رو ببینیم حداقل از روی آمار و هم حداقل بعد بخوایم ببینیم حتی اگه حس نکنیم الان می‌بینیم که چه بلایی سر زمین اومده به خاطر گرمایش زمین، خشکسالی و مسائل دیگه، شکاف طبقاتی که آماری میشه مقایسه کرد که تو دنیا چقدر افزایش پیدا کرده. و بسیار بسیار مشکلات دیگه ای که فقط ناشی از نگاه امروز ما، اون نگاه مدرن امروز ما به دنیاست و انعکاسش رو داریم توی معماری می‌بینیم. شاید یه نکته کلیدی لازمه که ما ببینیم که این تفاوت این ربل آرکیتکتس با این در واقع معماری امروز ما چی میشه؟ ما یه معماری قالب امروز داریم، همون معماری که تو جریان رسانه‌ها خیلی شما دارین می‌بینید و معمارای امروز ما هم تو ایران خیلی در واقع سعی می‌کنن که توی اون قالب قرار بگیرن ولی جریانی هم داریم که توی مجموعه ربل آرکیتکتس می‌خواد برخلاف این قضیه عمل کنه. پس ما یه معماری قالب داریم که خیلی مسائل رو برای امروز دنیا به وجود ورده و یه جریانهایی داریم که قالب نیستن که اینجا به اسم ریبل معرفی شدن و اینا سعی میکنن راه حل پیدا کنن طبیعیه که این جریانهایی که سعی میکنن راه حل پیدا بکنن از مجرای قانونی نمیتونن برای اینکه جریان قالب یه جریان مقابل این قضیه است اما جریان قالب امروز چیه؟ جریان قالب امروز خیلی مشخصه ادامه همون راحل نگاه مدرن به دنیاست یعنی با یه دیدگاه انسان مسلط به زمین در واقع ما میشینیم تراحیم میکنیم این جریان معماری قالب امروز ماست که در تقابل با این من میتونم این ریبلارکیتکس رو بهتر تعریف کنم خب این جریان غالبی که وجود داره که حالا من دارم میگم به همه چی آسیب زده این در واقع یه نگاه کلیگر یه نگاه از بالا به پایین به همه چیز داره نگاهی داره که توی اون شما مهم نیست با چه میسازین مهم نیست که مصالح الرمز کنین برای اینکه طبیعت اصلا مهم نیست مهم نیست که وزن ساختمون در واقع با فرم ساختمون کار کنه برعکس مهم اینه که شما برخلاف مسئله وزن کار کنین و مهم نیست که چقدر با محیط و اجتماع در ارتباط باشه و کاملا توی همه شرایط با یه نگاه مسلط مغرور داره به همه چیزا نگاه میکنه و میگه من آرشتکت باید به همه بگم به طبیعت به آدما به محیط به اجتماع به همه چی بگم بعد چی کار کنن خب این نگاه در واقع تمام شرایط فعلی داغون امروز دنیا رو به وجود آورده و ما هنوز داریم روش پافشتری می‌کنیم. حال ریبل آرکیتکست رو چی کار میکنه؟ ریبل آرکیتکست در واقع من اینجا به نظر من یه تبییر خیلی راحتری هم میشه براش داشت همون معماری آوانگارد امروز ماست. در واقع توی این ربل آرکیتکس با آدمای نگاه شده که برعکس دارن کار میکنن یعنی اون نگاه مسلط آرشیتکس به طبیعت توش وجود نداره آرشیتکس در واقع یه خدا نیست توش یه موجود حل شده است توی یک محیط بعضی از اینها با محیط اجتماعی و سیاسی دارن کار میکنن بعضی از اینها با محیط طبیعی دارن کار میکنن و همونطوری که گفتم بهتون به خاطر اینکه اینو نگاه. نگاه به امروز دنیا نیست مجبورن که مجراهایی پیدا کنن برای اجرای ایده هاشون که از مسیرای قانونی خیلی از اوقات نمیشه یا جاهایی بتونن کار کنن که کمتر در واقع دست و پاشون بسته باشه حالا در واقع این یه نگاه خیلی کلی بین تفاوت وضعیت امروز ما و اهمیت این ریبل آرکیتکس توی شرایط فعلی دنیا و برای آینده است اما اینجا من خیلی دوست دارم که یه پرانتز باز کنم. ما امروز نشستیم توی ایران الان داریم در راجع ربل ریبل حرف میزنیم. خب این خیلی قابل تقدیر خیلی های زهمیته. اما من دوست دارم روزی برسه که ما چشم رو خودمون باز کنیم و ببینیم مهمترین مسئله ما و نگاه ما به معماری به صورت ایده کاملا شخصی چی میتونه باشه منتظر اتفاق دیگه ای تو دنیا نباشیم که ما بخوام تکرار کنیم من مطمئنم که ما اگه توجه کنیم به اون فرهنگ عمیق معماری که خودمون داریم میتونیم بهترین راه حل و بهترین اسم و بهترین چیز رو برای معماری آینده دنیا ترسیم کنیم حالا من چرا اینو دارم میگم به این دلیل که یه پتانسیل خیلی عظیمی تو این فرهنگ معماری ما وجود داره اما برای اینکه همیشه ما خواستیم دنبال دنبال روی کنیم همیشه به ناکجا آباد رفتیم قضیه اینه که یه جریان های حقیقی تو دنیا وجود دارن اینه ریبل آرکیتکس یا یه موقع من با این ارگان آرکیتکچر فر هیومانیتی کار میکرم یا خیلی چیزایی دیگه اما جریان خبری و جریان مجلات و جریان در واقع مدیا یا تمام اتفاقای سیاسی و غیر سیاسی دنبال اینن که یه بازیچه از جریانه امیق بسازن وقتی شما دنبال روی میکنین شما اون جریان اصلی رو گم میکنین و شما اون بازیچه که ساخته میشه رو میبینین من فکر می کنم که به خودمون واقعا اطمینان کنیم و یه جریان منحصر به فرد و تولید کنیم هرچند دوباره میگم این مجموعه ربل آرکیتکس پایز اهمیت کاملا پایزه اهمیت به این دلیل که اگه جریانی تو آینده دنیا بخواد به وجود بیاد از دل اینا به وجود میاد ولی چیزی که من دارم اینه که ارگانای مختلف تمام قدرت های مختلف از بخش خصوصی بگیریم تا بخش NGO بخوایم بگیریم تمام اینا طبق منافعی که ترسیم می‌کنند یه تبیر خاصی از این ریبل آرکتکس یا از آوانگارد توی دنیا رای میدن موقعشه که ما خودمون الان نگاه کنیم و خودمون پیدا کنیم خب از این نگاه خلاصه بگذاریم من فکر کنم که چندتا تفاوتی که خود من تجربه کردم و بخوام توی نوع نگاهی که حالا توی این در ریبل آرکیتیک مطرح میشه بخوام مطرح کنم این تفاوت رو با نوع نگاه امروز مهمترین عزیی که من توش پیدا کردم قضیه اینه که شما چه جوری به محیط اطرافتون نگاه میکنی یعنی در واقع یا با محیط اطراف در ارتباط قرار میگیری تراهیتون تبعون پیش میره یا اینکه مقاب اون خودتونو قرار میدیم دو حالت بیشتر نیست خود من برای اینکه بتونم برم دنبال این جریان در ارتباط با طبیعت دنبال این میگشتم که از کجا میتونم راهش پیدا کنم برای اینکه خب تو تهران که من نمیتونستم شما ببینید ساخت ها حالا هر چقدر مدرن ببین اصلا امکانش نیست بخواین فرض با خاک بسازین تو تهران در واقع کارفرمای هم نمیتونید پیدا کنیم که حتی تو شهرهای دیگه حاضر باشه قبول کنه این ایده که مقابل ایده اجاری و نگاه مدرنیسمیه خب من فکر کردم که بهترین راهی که میتونم میکنم چطوری میتونم رو بزنم قضیه رو فکر کردم بهترین راه اینه که از کمپ مهاجرها شروع کنم برای همین بود که یه تجربه تو کمپ مهاجره افغان تو ایران داشتیم که دوتا تا ساختمانه خشتی براشون ساختیم ولی اون به عنوان در واقع یه تجربه بود که اصلاً بخوایم ببینیم کار با خشت چیه و اخیراً برای پناهنده های سوریه تو اردن یه کار دیگه رو کامل کردیم یعنی مجبور شدم که یه مسیر دیگه رو انتخاب کنم تا بتونم حرف جدید معماری یا در واقع این آزمایش جدید میماریو داشته باشم امیدوارم نگین که به پناهنده ها رو تبدیل کرده به موش آزمایشگاهی من خودم اینطوری فکر نمی کنم منکه فکر می کنم معماری موثر و امروز ما انقدر دردناکه منکه فکر می کنم زندگی تو دود پای تخت شهرهای مدرن از جمله تهران انقدر در داوره که شما هر حلی که بتونه مقابله کنه با مشکل امروز یا خط بزنیم بتونه مقابله کنه پیش پای آدما بذارین این میتونونه بارززش باشه البته خب تمام راه عل اینو اشکالای خودشونو داره <تصفيق> یه نگاه کوچیک بکنیم فرزن ببینیم توی کاری که با ممورای افغان در میگم ممورای افغان با مهاجرای افغان برای اون انجام دادیم چی بود اون کاری بود که همین از الجزیره اتفاقا تماس گرفتن با من میخواستن از اون فیلم بگیرن که من نبودم و بعدش هم دیگه تماس ما از دست دادم باز شد به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که ما اول بررسی کردیم بود اون افغانا فرهنگ ساخت چون چیه و خود اونها خیلی با فرهنگ غنی ساخت با خشت داشتن و تمام پولی که محسسه در نورویژن رفیجی کانسیل تهیه کرده بود و ما در اختیار بن‌های افغان قرار دادیم یعنی به که ما این پول رو بدیم به کارخونه برای اونا فولاد بگیره مزر اونجا دادیم به اونا خودشون شروع کردن خشت زدن پس این پول در واقع تزریق شد توی جامعه افغان‌های مهاجر و بعد کار تولید شد اونجا و از همه مهمترین که خودشون با دست خودشون ساختن و میدونید بعد از این احساس می‌کنن که خودشون جزءی از روند بودن و این بناها کاملا متعلق به اوناست سیستم کنه یه چیز فضایی اونجا قرار گرفته و از همه مهمتر اینه که احساسی که دارن اینه که هر جای دیگه دنیا برن و هر بلایی سرشون بیاد خودشون میتونن با دسته خودشون بسازن خیلی فرق داره تا اینکه شما چادر ببرین توی کمپ بذارین یا کانتینر بر... برین توی کمپ بزarin در واقع فارق از این که حالا اون بناها چه فرمی داشتن فضاهاشون چقدر غنی بود مثل اومده بود که من خودم درگیرشون شدم اما خیلی حرف هست که بخوام براتون بزنم خیلی حرف هست فقط میتونم بگم که یه جریان نو توی معماری که اینا هم همون فکر میکنم احساس میکنین و هم همون میدونیم که اون جریان مدرن که تو پرانتز مدرن که امروز هم خیلی تو ایران در واقع رایجه و قضیه استار شدن جریانی که دیگه تموم شده جریانی که تموم شده و فقط امیدوارم که خوب به معماری قنی خودمون نگاه کنی به خصوص معماری خاکی که داریم اما آینده متفاوتی با امروز و آینده متفاوت با گذشته رو بر پایه اون دیدگاه بتونیم توی معماریمون و البته توی زندگیمون تولید کنیم خیلی خیلی ممنون و امیدوارم که آینده زن شما باشه خدافظ من اسمم پرویز پیران هم واقعا بدونین که شکست نفسی های روغینی که رایجه خودم یه دانش آموزه کوچگی میدونم به اضافه اینکه در دانشگاه هم در حکم بازنشستگی من نوشتن به دلیل رکود علمی این یه مقدار با بامعناتر شده پس یه معلم مردود شده مباحث اجتماعی فضایی هستم علاقه هم بین این دو تا فضا جامعه تاریخ منتها سعی کردم از دوران اون موقع که بیشتر جوان بودم اگر بگم تا امروز که کمتر جوانم سعی کردم که دائما کار میدانی کنم و با جامعه زندگی کنم اگر بخوام دیگه معرفه خودم کوتاه کنم اینه که حاصلش اینه که یه کار تحقیقاتی بزرگی که یکی از لطفایی که به خداوند من کرده بود داشتن یک رابطه بسیار دوستانه با ادانشجویانم بود و این باعث شد که ما بیست و پنج سال بتونیم کارهای تحقیقاتی رو با هم پیش ببریم و بیش از هزار تا تو دانشجو توش کار کنند از دانشکدهها معماری شهرسازی و دانشکها علوم اجتماعی و حاصلش تا نظریه بود که در واقعع تاش به علوم فضایی مربوط بود دو هم به جامعه و در کنار این حرکت تحقیقاتی تا کار میدانی انجام بدیم پروژههای مشارکتی ترایی. یه مقدار توضیح رو جبه فعالیت که من کرد اما برگردیم به این فیلم و بحثا ببینید به نظر من این جریان بسیار بسیار جوان که مثل یک نحال تازه رو هست که من آرزی دارم به درختی تنومند و سایه گستر تبدیل بشه این واکنش به شرایطی است که در واقع در شد 70 سال گذشته خصوص و اگر ریششه بخوایم پیدا کنیم از پیدا سرمایه داری کم کم کم کم شکل یعنی یعنی در واقع این هست که به تدریج منطق درونی سرمایه داری یعنی انباشته دائم و تضاید برای سرمایه گذاری مجدد و بی پایان. این کم کم آمده و جای انسان روابط انسانی جای تاریخ جای جامعه رو گرفت در نتیجه برنامه های تحصیلی در دانشگرده معماری، در دانشگرده های علوم اجتماعی در دانشگرده های علوم انسان بگیم به طور کلی هر علمی که به انسان معروضه کم, کم کم کم کم گرایش پیدا کرده به سمت مقتضیات انباشت یعنی در واقع همه چیز در خدمت ارزش مبادله قرار گرفته و در واقع در خدمت انباشت در نتیجه خود این بازخوردش هست که ذهن ما رو از نوآوری و اندیشیدن به هیتههای متفاوت جوان مختلف را با هم دیدن دیالکتیکی اندیشیدن اینها رو از ما گرفت خیلی خوال نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در دانشکرده معماری آرزوی بچه ها این هست که یا بیان در پروژه های پیمانکاری کار کنند، یه روز خودشون پیمانکار بزرگی بشن یا اینکه برای طبقات سروتمند های به نام های مختلف تولید بکنن که در این تولید در واقع ساختمان اگر بگیم سازه اگر بگیم بخشش در واقع مسکنه، یعنی وا احتکاری. یعنی چی؟ یعنی همونطور که در همزمان با اینکه تعدادی از خانوارها سرپناه ندارن خانه های ساخته میشه که هرگز برای اینکه کسی درسته دیگه کنه ساخته نمیشه بلکه این باز هم با عنوان یک راه حلی برای انباشت و جرالگیری از بیارز عرض شدن سرمایه و پول ساخته میشه این فیلم یا و این جریانی که در زمینهای مختلف شروع شده, شده این نوید رو میده که بیان یک بار دیگه جوز جور دیگر باید دید و این جور دیگر دیدن اون وقت کمک میکنه که بلکه ما بتونیم از این جریانات خارج بشیم برای اینکه بهتر متوجه بشیم اجازه بدیم من به را رو که بارها بارها تکرار کردم برتون بگم ما دو جور علوم انسان داریم علوم انسان بی ربط، علوم انسان بارها بخش عمده چیزی که دانشگاه ها الان تدریس میکنن علوم اجتماعی بی ربط و علوم ف این نوع فیلم ها این نوع جریانات داره هشدار میده که ما از علوم انسان بی رفت بریم سمت علوم انسان با رفت انسان رو جایگزین انباش کنیم و ابتدا هم در هر این سه اپیزه کاملا این رو تکرار میکنه که یک نوع معماری که میخواد انسان رو, رو مقدم بدونه به سازه ها و نماد ها و بحث های مهماری. مثال های توی زمینه میزنم. مثلا میگیم مهاجرت بیردی یعنی شما یه لحظه فکر کنید در یه جامعهی که جمعیت روستاییش به شد رشد میکنه اگه بریم به سالهای سی تا سال تبتاد به شد رشد میکنه زعالگوی کار و تلاششم هم داره بیکاری طولانی سیکل طولانی بیکاری داره چون فصل کارش محدوده و از اون طرف هم نیروی انسانی که تولید میشه از و بلد برای یک چهارمش شغل وجود داره خب اگر اینا مهاجرت نکنن در روسته ها بمونن چه اتفاقه نیست؟ یا باید دیوونه بشن یا خودکشی کنن یا اینکه به کارهای دیگه دست بزنن به همین دلیل اندیشمندان مندان مترقی لاتین در دهه هفتاد اواخر دهه شست میلادی آمدن گفتن مهاجرت جانشین شورش های دهکانه. مثال میگه همین بحث اسکان مسکن خودساخته، اجتماعات خودساخته یا اسکان غیررسمی که به اصرار و به غلط حاشیه نشینی بشه. و هم میگن یه دست همکاران ما وقتی اصرار ما رو میبینن میگن بیشتر تکرار کنیم حاشیه نشینی. قفل از این که مردمی که در اینجا ساکنن از این واژه نفرت دارن. انسانیم خود این کمک میکنه که این مردم مشکلاتشون در واقع باطولید بشه. نگاه عمومی بهشون همین باشه. کم کم اینا در خودشون این سلف امرج یا خودشون هم میره به اینکه من حاشیه‌ای من جز متن نیستم من به درد نمیخورم من زیادیم من اضافی از این هست خب حالا فرض بفهمیدن در این مسکن خودساخته دولت ها قادر میشدن جلوی ساخت ساز رو شما شما امروز نگاه کنین با یه تخمین بسیار بسیار محافظه‌کارانه یک سوم جمعیت تبریض بیش از یک سوم جمعیت مرجع بیش از پنجاه درصد جمعیت سننده. نزدیک به 40 درصد جمعیت کرمانشاه نزدیک به 30 درصد جمعیت اردبی دارای اسکان غیر رسمی یا مسکن خود ساختن اگر اینها قادر نمیشدند مسکن برای خودشون بسازند باید اجاره بها رو در ماه میدادند که بزرگترین تنقدرم خبره خزانه بانکی اون وقت چقدر فحشا چقدر فروش مواد مخدر چقدر خودکشی چقدر طلاق اینها اضافه میشد پس سوال اینجاست که آیا اسکان غیر یا مدگم خودستان را حل یا آسیب اجتماعی موزن شهریه و غیره حالا این, حال این متصل شده در آیا هشتاد به بعد به بحث مشارکت به معنای مشارکت فعال مشارکت پویا یه ولی یک گپی هست واقعی که ما این بحث مشارکت پویا رو در چارچوب های کهنه داریم مطرح می کنیم یعنی الزاماتش رایت نمی کنی. ما الان در شرایط ایران حیاتیه برای ما که ما بریم به سمت تشکل اجتماعی عام یعنی شهروندی حالا چرا این حیاتیه چون واقعا از آن دولت ها دیگه قادر نیستن و سلاح هم نیست که تک, تک مسائل جامعه رو انجام بدن و مردم چه صرف باشن این دیگه عملی نیست و به نف جامعه هم نیست به نف حکومت هم نیست از اون طرف وقتی میگیم پروژه‌های شهروندی پروژه های اجتماعی چون شهروندان دیدگاه‌های متنوعی دارن نمیتونه این پروژه ها سیاسی هم باشه حتی این پروژه‌ها مسئله مهم و تعریف شده است. در این چهارچوب تعریف شده اینا حیات که جامعه ما اینجاست که باید برای این که این بحثای مشارکت بحثای ورود مردم مردمی کردن معماری مردمی کردن حلود انسان و غیره مطرح بشه ما مجبور هستیم که ساز کارهای جدید رو تعریف بکنیم این ساز کارهای جدید با خواسته های جهانی سازی از بالا و در مقابل جهانی سازی از آین یا جهانی از طریق جریان های اجتماعی هم همهنگه. و با بحث کوچک شدن دولت ها مدیریتی شدن دولت ها برنامه ریزان شدن دولت ها هم همه هنگیه. و چاره ای ما در آینده نداریم مگر که بریم به این سمت منطقه باید بیایم این رو کلیتش و جامعیت را رایت کنیم و در چارچوبه همه جوانه و اجزا و نیازها و پیش نیازهاش این رو ببینیم به نظر من این یک اتفاق فرخوندهیه به نظر جامعه به ما. و آرزو دارم که به جامعه یک امکانی رو باد کنی که اینا به برس واقعی گذاشته بشید و نهایتا به یک تفاهم ملی ما برسیم این تفاهم ملی به یک از ملی ما رو و شروع کنیم محصه اینه که مردم بیان زندگی خودشون هر افضاهایی که به حال زندگی روزمرد و اجتماعیشون اقتصادشون مردمیشون اداره کنن رو در اونی رو نهادینه کنی و برای سرزمین زمینه برای زندگی مناسب تر مناسب کرامت انسانی که در قوانه جامعه ایران هم دون اشاره شده پرامن آماده